فصل شش بخش هفتم عربعین حسینی زبان حال حضرت زینب سلام و علیه ها آخر چهر روز شد که از تو ام جدا باور نمی کنم که شدم بی کسی اخا افتادم به روی مزار تو ای حسین افتادم ام زپا و ترا میزنم صدا شد تازه داغ قلب من اینجا که آمدم آرم بیاد لحظه تنهایی تو را با صورتت زروی فرس خورده ای زمین آندم گرفت دور تو آن قوم بی حيا. دیدم زتل نشست روی سینه تو شم گفتم خدا کند که زدست شویره شویرهها. دیدم برید رأس تو را از غفا ادو دیدم که کرد رأس تو دشمن به نیزه ها قارت نمود معجر و خلخال دخترت ما را کوفه و بازار شامیا ما را کوفه و بازار شامیا